اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن محملاً كاملاً لمن أراد أن من رضعه وعلى المولود له رزقهم قصوتهم من ذي المعروف لا تكلف نصف لا وسعها لا تضار ووامدته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوابط مثل ذلك فإن أعادات صعلا على منهما فلا جناح علیهما وإن اردتم ان تستردروا او نادكم فلا جناح عليكم فلا جناح علیكم اذا سلمتم ما بالمعروس واتقوا الله واعلموا ما تعملون بسیار حالا بلاله این الشیطان الرجیم اسمی الله الرحمن الرحیم بعد از طلاق بحث مسئله رضا هست فلان مادر اللہ فالان میگه شیر بده از اولادش را یو زنه مانای امر هست یعنی مانای انشایه حالا نباید بگم که این مادر اصلا به تیر ترزان تلاش کرده است یا اینکه تلاش نداشته است. شکل مادری این تلاش داره می کند که مادر را دلد را و ترزان به خودش شیر بدهند و والدات مادرها یه زین شیر بدهند بر تقاری خود را. اون هم حاوله این کامل دو سال کامل تاکن به چه روش کنند و از نظر عقلی و فکری درست باشد. اگر اگر اراد کسی اراده تکمیل رضا ندارد ترک رضا جایی است. بی خاطر می‌ل من اراده اینو دنبال می‌کنم. برای کسی که اراده دارد شیعی را کامل کنه. لذا اگر کسی بخاطر ایک مسلحه دی بخاطر شیرا قد کنند با امکانات امروز ممنونید و بعدی از قانومه ها که حاضر امنیست شیر بده شیر خوشک میدن خودشون لاغر نشن خودشون زیف نشن فیر نشن درازدین خاطر اجات هر خلاصه دو سال مدت رضا بل اجماع امت هست که اگر در مدت دو سال بچه ایرات زنی دیگر شیر بدهد حرمت رضا ثابت میشه البته ایمام ابو حنیف رحمه اللہ میگرد دو سال و شش ماه سلاسون شهران تونسش پیش دیگر نا امام ابو هنیف میگه چون یک روز گریه یک ساعت گریه دیگر نته تا که بچه عادت کنه داششی جراب بشه حدود سال فقط از امام ابو هنیف هست کہ اگر بچه ای گریه بخورد رضا لذت داده دو سال کی ازمای کنه خاله کامله تو نسل اصلی من شهرن هم آمده است امام ابو هنیف میگه که داششی ماه دیگر هم اینجا توفیل میشه که این مدت قضا ما زاید تا عادت خوردن پیدا به حال سات دو سال اگر این بچه از نین شیر بخوره مدت مسئله رضا ثابت میشه خب حالا اگر این مادر متعلقه شده او بچه را شیر میده مولود لهو جسی که بچه بلایگو هست یعنی اده باید این شیردهان را مادران شیرده را هم نفقه بیدن هم لباس بیدن اگر در حال ده تو بخاطر زوجیه ده. و اگر در اده بخاطر اده می روزنان و اگر بعد از اده به عنوان حق و زرمه که تاکه و فیلر محظفه که باید این شیرده را در هر کهیتی رسک و هنه و کسرت و هنه بده یعنی نان و نفقه و لباس بده اگر معتده است تو شیرده بازم محکنم لازمه و اگر نه توی ادنی طلاق گرفته دست روزشته حالا بچه رو شیر میده مسکلش نازم نیست همون نفتا و همون لباس که با قرارداد تمنی شد اونو باید بده کدر که باید شیر میده در زمان اغده به خاطر زوجیه در زمان اده به خاطر ای که اده میده زاله بعد از اده به خاطر اینکه او شیر میده بچه شد او سرشت باید میده نفقه بچه را هم باید داره لباس و نفقه بچه را هم باید داره علال بر اون تدهی که بچه ما روید دادن نفقه این زنان شیرده در نکاوه ادباشن یا نباشن نمیشه در صورت اول و دوم دو وجه منکوم و موترده بودن و در صورت سوم و وجه قجرت دون لا تکلف نفسون لحاظت ایر داده نے لباس اگر لیے لباس و نتغاؤ خرج قودع و, و اگر مسکین و و نادار یا حفظ خودش تکلیف نفس اگر موافقی طاقت به خاطر پرزن داشت مورود خاطر بیده روی اللہ دی شیر هم داره شیر تو دادی دادی چرا آمی بری خود چرا خود او خقی هدانت هم دارد پشکوهری نکرده بچه مادر را ضرر ندارده خاطر بچه خیده مادر میگه آه باید ساد از این بچه موظفن که اگر این بچه را شیر میده سپنه باید به اون شیرته حق و علا الوارفی مثل این چند و تاقیب دار چیزی که پدر میداد وارث هم باید دید کسی که شیر می این بچه را مادرش هست ایده دوزشته چار ماه در روز خود در اده برنه فقط دیده میراسش تحکیم کرده حالا اضافه بر میراسش چون بچه را شیر میده حالا اگر بچه خودش سرمایه دارد پدرش مرده بچه کسی که سامش ملیونه ه و با سامش بیان هر دو به همیه ما درش رفولشی می‌ده. یا دنی دیگر با؟ یا اگر نه، اولیای بچه ما زبان که در برداری بچه بدن، بچه یکی کنده نداره برداری چی نداره حالا برادر آداب و صورتیش یا کسی اولیاش هست، باید بدن. حالا الوارث نیتروذالکه. حالا اگر پدر و مادر خواستن که بچه را کمتر از دو سال شیر بده، با این سلام مشوره کنند شیر برایش مناسب نیست، مادر مریض شیر مناسب نیست یا نه اون مادر حامل شد شیر برای بچه مناسب نیست، میخواد شیر را قطع کنند، الله تعالی میگه باز اجازه داره. اگر اراده کردند پدر و مادر که سال جدایی بچه را از شیر کمتر از دو سال، با ردامندی تلفیح و مشوره ترپد گناهی برای ها نیست در آن مسرعه بچه در نظر گیرتش شیر مادر نمیوفته با بچه بچه را مریض میکنه مادر مریض حمل تحمل را ندارد و لحظه اگر غط کنند مشیر خوش بدند و آب میوه بدند و دیگه غضایی بدند ایچ مسئله نیست خدای از رجمین خوگه با رقامندی طرف رباط مشوران بنایی برانمانیست که کمتر از دو سال شیر بدند کنا بر مسئله که برای بچه در نزلید حالا مادر موجوده می خواهن کسی دیگر این بچه را شیر بده چنانچه عرب ها همین طور نیگر بچه هایش اونا دیگره شیر می دادن دیگره شیر پول همانطوری که خسران زنانی که در بیابان بودن و عرب ها آب و هوای بیابان را مناسبه می دادن برای روشت بچه هاشون پول می دادن دیگر می آمدن و عجیر می شدن و بچه ها را می بردن تردرش می دادن و حقوق می گیرد نست بیدرشون همانطوری که خلیمه سعدیه دیگر بچه گیر ناو پرورش بده خود شیر داشت با دستور رسول الله تعالی این سعادت ترش شما موده هر الان هم اجازه هست اگر به والدین کسی دیگری رو بنویش شیر بده تا قبول کنه و پرورش بده الله تعالی هم اجازه داد و اگر جناادت کردی شما ای پدر و مادر به خاطر اوزی یا به خاطر چیزی دیگر که شیر بهیر کنید اولادتان را به کسی دیگر از دنان تو گناهیم به شما نیست لیکن اللہ تعالی میگه بچه شما را میبره شیر میده بعد ششما آورد حقوق ششما شما نداردید این ظلمه قرارداد کردید باید اون مغرران را حتما بدید بازید کل عبرداری میکنه بچه هم شیر پرده بودل شنه علا حقوق نمیده اللہ تعالی میگه نه مناغنیت با شما که شما با زنی دیگر او را شکل بدهید به شرطی که شما حواله کنید آنچراکه شما قرارداد به طور خوب او بیچارا مایه وجود اشتبه بچه شما داده الان شما خوبشن ندی چیکار کردی چیچی دادی او آواز بدی نیشه گوستان کچکار کردی کچک کچک کر برای بچه چی ایچی نکردی شیر بوده اضافتو دهنش دادیم اللہ سلامین گل نه زمانی بر شما گناه نید که شما تفیف کنید یکی قرآن در دا اصطورت تعبیری دارد انچرا شما دادهید یعنی انچرا شما قرار کردهید برای داده اونا حکم باید تفسیر کنید به این مرضعه شیر ده قرآن تعبیری دارد انچرا شما دادهید یعنی انچرا شما قرار داد کردهید شیر دادید به طور محرور بادل اطراح حتا کل الله از خدا بترسید قردلی نکنید بچه شما شیر قرده على حقوق نبزن مرد عرنمی و بدانید که خدا بهانچه شما عمل مکنید بسیر است سبحان الله هر جه الله تعالی دستور تقوی میدهد نسی برای الاد برای تقوی زیر نکنید بدانید که الله بهانچه شما عمل مکنید است حالا بیان اده متوفان ها, ها شد زنی که شوهرش اون اگر حامل است ادهش و اگر غیر حامله چه مدخولبه چه غیر مدخولبه های با چار ده روز زن بیشینه و در این مدت هم احداث کنه احداث چیه؟ خبیر نکنه این زن که شوهرش خود کرده فقط تو برای متوفان زن متوفا چهار ماه در روز ده روز باید در باشه دیگران از که روز بیشتر نباید کنه برای برادر برای برای پرسند برای مادر فقط روز اگر زنی توانست آرایش نکنه تدیم نکنه خب مسئله که روز نیست بله زن متوفا چهار ماه در روز تبین نکنه احداد هم بکنه و ازواد انسانی نکنه اگر حاملت تو اتش و زیخم اگر مردت مرده هنوز دفنش نکردن و زنش را پیدا کرد اون زن اتش نکرد با وز و ان کسانی که موت داده می شوند از و می گذارن زنانی پس اون زنان بند کنند خود را از نکار شا... نفسهای خود را چهار ما و ده دوست وقتی که تکمیل شد میاد آنها بنایی بر شما اولیاء متوفا نیست در آنچه این زن انجام میده با نفس خودش این زنان همچی خواسته نکار کنند و بعد یعنی قد شوهرش مرده چهار ماه در روز تکمیل نمیده شوهر دیگر میدید و در قدیم زیاد بوده نشار رزود زود میده این بعد از شعار ده روز حالا اجازت داره شوهری بگیره اهداد نکنه تجین این مسئله نیست ما در این مدت ادده ادده ادده ادده متوقع هر هر یا زن در ایام پیام نکاع بی انتیبه صراحةً منبولی چن آیتاً اللہ تعالی اجازت داری صراحةً این ایک پیام نکاع را بیش ابلع کنیم مستقیم بی ذریعه تیلی کنیم رضا لو قرآن خانمه که تو ضممه مشکریه ناراحت نہ نا ہو شوہر کوت کر ناراحت نہ نا ہو خلاص دے کر ناراحت نہ نا در ایدت فیا میں را صراحتن حرام ان مثلی چیز نہیں شوہر دس سے بادشاہ دشمنہ قیام نہیں کر دی حرام ہے در ایدت او مال شوہر کی مرده یا طلاق با دے لازم قیام در ایام ایدت صراحتن ممنوع ہے کنایتن عرفان ممنونی اینا تحریف می گوید تحریف می گوید تحریف می مرنی اشارات سنایات توری کلمات را الہم کنی دان جا که خانم در فرمت سے حضرت میری ادارت می زن خوب و پارسائی تجربکاری بیویی جیل می آمد آم مسلمی لازا خوب لازا دورم نی دانند که حضرت دیگه خال دارد دارد. اگر میلی به حضرت داسته باکر دیگه خدمه کنندگان را جواب لیم نیست مناعی بر شما در آنچکه اشاره می کنید با آن کلمات عرفی من خدمت النساء بیان ما حرس از حیام نکم خدمه النساء یعنی حیام نکارا شما اشارتن بگید یعنی ان اشارتن نگوکید ظلک بیوش شد شوهرش مرد یا تلام رفید و, و توی اده حضرت در دل مخفی کند که ادهش تمام میشه خاصه دیکھا من از غوط جلوتر برای این دیوه میریم این در دل داشتا ماشید این الله تعالی میک بلار ہی نیچه یا مخیی داشتا ماشید در نفسی باقی اشاره را اللہ تعالی جائز کرد در دل داری که بعد از این دن را نکاح می کنید ایده ایش مبزرد اللہ تعالی می که نغلب شما این تصور را می توانا دور کنید و دادای انغاد عشق پیدا میشه که بدون تعریض و بدون سلام و علیه کی شما هم سبری ندارید هر روز میری دون جاؤ حال بچه ها را می پروفید یه حال بچه ها چطوره خوربان برادر بشم وپاپ کر و نشار بیچاره می فرمد کہ حضرات نظر خدمت نکنه برادر ذات هارا لہذا شاید مادر برادر ذات مادر این بچه هارا مادر این برادر ذات هارا ماخر خدمتی نکنه می میک خاطر این اشارت اللہ تعالی شما صحب ندارد وچی کاری خاطر علم اللہ اللہ می شما تذکره آنارد در قلب یا با اشارت می لیکن خرقنا و تو تو می ایک زن که برو بودو بیوالا تمہا مشتری تو تشن ادده بکرن آلا حق یا امید باہداراً سارو کنی کنو بیستی اونگا حمد داراً افرش دے بین خاطر اللہ تعالیٰ میگه حق نگاری چی صراحتاً پیام دے دیئی مستقیمن یا بواسطہ اکرابی پرستی این حق را نگاری خیالش داشتا باشی اشاره شرک بکنی لیکن پیام مستقیمن نکا ان حق نگاری کلا لا توعیدوه اللہ بے الفاظ سریع سرر که عموماً پیام سرر میره وقتی که ممنوع علرن که به طریق خلا ممنوعه الا ان تقول قولا معروف ها مگر اینکه بگی سخن معروف یا یعنی نه ما سخن تعریف آنکه مرعوزه عرف برای تعریفان هر کسی عرفی دارات چطور تعریض نکنو چطور چفقط می‌کنی حالا خدمت برادرزاد ها با قوت تمام بشه خو مادرش اون برادر داده ها بگن که حضرت ملی داره بسیاری به اسطلاح بلوچه ما نشعرها بیچارا چشم انتظارش من خوش شده و برادرهای بی بخار اصلا پیامی نمی فرستان و هم قدیمین بلوچه های ما رست مخیلی خودی داشت این ازدواج بیوا یعنی اگر کسی برادرش خود کر از دنیا را که در این دیار راست بودن نشان را می گرفتن یکی از فلسفه این راست کهی راست میکنه ایو رو دو آغا نوانی دید دی. حدت بردن قلوبی و آزادی و نوزو بیلابی و بندواری و این چیزها خودی خانم و بادو تا بچه اسباسه تا بچه چهار تا بچه این بیشاره که عمرش عمرش پیر بشه؟ دیگر کسی جرعت نمی کنند که بهش پیام بپرسته او از طرف بچه هایش تم نمی توانا کسی دیگر را ازدواج کنند و اگر سربتمنده از اون سربت و مالی که در اختیار دار از زن از ازدراک اگر ازدواج میکنند دیگری را تکیه نمی کدارند لیکن اگر برادر اونو بچه هایش به ازدواج کنند تم بچه برادرش تربیت می شند و همون زن بیشاره به نوائی می او نمیشه نه خودش دانده کنم کنم و نه دیگری جرعت نمی کنم دیگری جرعت نمی اون همتن بیچاره به خاطر این ساحتمان به خاطر بچه به خاطر اون متایی که شوهر به دست پشمانده هم نمیتوانه به دیگر جرعت کنم دجای دیگر اتوات کنم این خط خوشیه به رو جهار رسل سیلی کنمی داشت هم بچه ها سر یک پشنم و بچه هر بچه و تمام زندگی بیوه ظلمه، به نوایی میرشه ایشاره براهم که بیره مردی باشه وَلَا تَعْدِمُ که نکنید عقد در ادام حتی یبلغن کتاب و, و اجلهو فا مكتوب الهی به تاریخ رجش برسه چهار در روز متوطعا حالا اگر کسی در عده ذنی را عقد کرد چه عده طلاق، چه عده وفات، این عقد منعکد اصلا نمیشه و این عقد قطعا حرام است و در غدیم اینطوری کردند بسیار را کردن یه قادیره دیگم اللہی گفت که تو در عده عقد شدور خاندید اوز اجله داشته که نشان رسود بگیره مولایی را دیگه که در کوچه آکی گرفتی و خان را خاندی سهر مارا بیار کون چونکه بزرگی بودی را تاند در گفت حضرت ما شرک کرده ایم گفت بس کن کرده ایم داری نگاه کن هران نمی شود وقت اقدم و اكيد نشرب شربان قطعا حلال و خدا نجات بده قرآن اكيد بیان رب العالمین هست لا عادی حقتا نکوه حتی اپ لوگ علی کتاب اجل هو قدیر اراده گنا الله سبحانه و تعالی می فرماید که اراده جنهرم کنید ما فی ما فی یقین باشید اللہ تعالی خدا را گزاری این یقین که غفور حلیم اللہ تعالی بخشنده هست حلیمه. بر ادم مقاحبه مغرور نباشی او بخشنده هست ملت میده سه سوای میده می وقتی شما را گرفت کرد شما قانون خدا را نفس کردید الله تعالی میگه چار ما شما سمه می گذراید. خب باقی بلوچه آیم همشه همین تو دهنش ده که اتا سمه و ده رو. داروز شیاده اونجا چهار ماه از داروز کرده جدید سیما و داروز بزرانی ده بابا هنوز یک گفته همین و حالا ها چهار نه و هیچ نیست درست کردم درموز از دا اینجا گرفت و سمه را از اون گرفت و آمد هینجا او اگه میت مهمانی زمان اینکه اینطور کرده بود یک زندانی چاپن سال زندان بود کستندی شو آخر زن اشرا یک عاشقی مخاطبی گیوه اینطور تو در عبت بود, بود. و قاتبی و بیام دامادی ما خبش کنه او گلده باب از خود حیحک و نکاه تو دسته نشده وله هنو دروسی نکرده بود اینه در روز شما در روز شده باب از شما در روز می چهار ما در روزه اوشکوهرش خاله های سال پیزن نم بوده اصلا ندیده خانومه او ندیده باشده ایده هکم خدای و الذین یتوقعونم این قومی درون ادواتی طلبتره نگفته که عطمان شوهر در کنارش پاشه اده بودگاره اده در حقیقت متوقع خن راق زوج و راق این یک حق شرگیر این بخاطر پاکیر رحم نید ولو هم که در این شغار ما و در روزن یک نوبت همزن هیدنس ادهش کنگذاره لیکن اون که متعلقه هست اون همون خلصفه که هیزا میایت بخادرینه که انکه بچه ندارد قرآن آزیم بیان شان این بیان متعلقه زنی که مدخول به هاست یا غیر مدخول به هاست اگر غیر مدخول به از خالی نیست معرس شده یا نشده اگر معرس تعیین نشده بود طلب سو دیگه دست لباس حالا در عرف ما معمول ایران سلوار و چادر نه روسری چادر بزرگ هم مطابق داخل شورا باید دست لباس بلده حالا اگر در عرف پای دیگه لباسی چیز اضافه میشه اون هم باید باشه دوباره میشه اگر غیر مدخول به ها طلاف شد و شده بود و اگر مدخول به ها شد اگر محر قائم نیست کرده و مثلا این هم انجام گریسته اونجا محر نیستی باید و اگر محر شده کمون مهرد شده را باید ارداخت کنید. بنایه نیز بر شما اگر طلاق دادی زنان را تا زمانی که دست نده بدیدون زنان را او اینجا هم عدده مالم تمسوهن او لم تفریدو لخون نتحیزه تفیبینید غیر مدخول به ها سلام جد نوشته حقیقتن یا حقمان من توزیش قبلا برای شما دادم اگر در اتاقی بدون مانیتی هم شدن در حکم من خلقه هاست. ولی هم که بگم بابا ما دست نمی زنی و بله و این طرف اون طرف بزنید. ولی ما کو باور نمی کنی شریعت, شریعت هم باور نمی که تمام شب در اتاقه تمام روز پشت در های بسته و ما هم ایمادت نمی زنید. هم هست. شریعت همین قبول نمی در حکم من های ومکی و هنه همین نامذت که معلش تائی نشده سامان بدهی دین آره یعنی دست لباس علی الموسیب اندازه همون سرمایدان و علی المختیر بر تغییر اندازه همون تغییری دست لباس این مطام بالمعروف این یک سامان کچکی بیتاری که معروف بودی، دلش ما وسیبه هر ما این نداستی زده بودن نامزد سر هلاس ساده دار توام برای لقبش میده، ما را انتخاب نشدی. الله تعالی میگه معروف با این موت آدادری نمیگه موت این واجبه، این منطقه. مگر حضرت دیشب مطالعه میکردم، حضرت حضرت ملادیالله تعالی مزینت خدا، ده هزار زیرحم تقدیم کرد دو قطعه قلیل من حبیب مفارق سامان مختصری از طرف یک دوستی که جدا شده است و جدا کرده است بابا سیدا کی ذات عنایت است متون قلیل من حبیب مفارق بلی ان الله طارم گی سامانی به طریق معروف باید دار او این هم حقاً على المحسنی حق لاغمیه با تمام نیکوکاران یعنی مسلمان ها این متعا یعنی این سامان رضا دنید در دل لباس را واجب هست وَإِنْ تعلمهن من قبل ان تمسورد شو مطالب ذي زنان را اي من دا جيڪقبلت ما كانه هرا داس دي نه حقتن دشت شودي و نه حكمه حالا کي حكم مهرانانه ته هم كار دي يا اون را ببخشد یا ببخشد اون مردی که در قبضه اون عقد نکاح بوده کل مهر داده نامزد را ده میلیون را داده حالان دا هم داده بگم دا من ایچی نمیخوام، این طوری کسی پیدا میشه حالی زیادا نشل امام حسن بگم مطان قلیل من حبیب المفارق با الان کالا به مردان ترقیب میدهد که و انتاق و اقرب و لطق و و اگر شما عفت کنی خیلی نزدیک به تقواه هست این زن بیشانه را ازدواج کردی دست هم ندردی دا صلاح دادی حالا چهر غلان ده میلیون برای یک سروائدار درده بی ایک زنی مسکینی خدا میلیونه ها پول در اختیار اون گذاشته چیه؟ نیست ده هزار دا یک مسکینی دید. این خاطر قرآن ترقیب به تقویم میره هست که شما مردان کاملا مهرا فرداخت کنید و اگر فرداخت کرده اید نصفش را نگیرید نه این واقعا خیلی چیز خوبیه به زنان به مردان ترقیبه اگر عفت کردید زنی مرد نگیرید نصف مهران گفت نمیگیرم مرد نداره بده اردبی ماییه بیعصابی، هم مال نداشته، هم احساب نداشته، نامزده، چلاف داده خوب اگر اف کردی، اکرت تک باست ولی تنسق الفاضله به مردان ترغیب که شما اون فضیلتی را که بین شما بوده از فراموش نکنی بله یک روزی تو به عنوان شوهر بودهی و او به عنوان خانم بودهی و بین شما یک محبت و ارتباطی برقرار شده شیرینی خوری به اصلاح شده تو میر دامت بودی او هم به اطلا خاتون بوده چه حقوانو بوده لہذا شما این فضیلت را که بین شما بوده فراموش نکنی خدا می فرماید لا تنسوا الفضل بینتكم ان الله بما تعملون بشیر الله بیان چھ شما عمل میکنید نصیرے تو این امور انتظامیه و یاری سر برانے قرارنی که به قاطر این طلاق و نکاح و ادعا و معرو این چیزها همشه نگاه و افتلاق و دادگاه و دادگاه کشیه اللہ تعالی میگه من قانونی برقرار کردم طلاق شد متوفا شد چطوره؟ این قانون من خدا وقتی شما بر قانون من خدا عمل کنید افتلاقی نیست شما دوغ قانون اگر طلاقی رخ دار به زن حق و حساب بیدید بی بمتوافان حاضر ها جو هاں حق ها و حساب بی دی. نسبت به اولاد کشویمی دل حق و حساب را بی دی چھوان مسلمان ها چلی اختلاف کو کنی امروز اکثر اختلافات و دادگاہ یا بس آتر زنگ یا زر یا زمین اول سالہ کو فرام کری نکنی نا, نا حکمالی بگر رنگ کری ونا تو دلو بھی حائر الحقام نمی کری مسئلہ زنان را بیان کر کہ نزا اشکر سنجا حرکیت بی کنی مسئله زمین را که میراث میشه همیشه اختلافات شدیدی میشه خیلی نمیشه شدید خیلی شدید میشه یک شرا در موقعیت تجاری قرار داره برای و مردم نیخه و خبره بکتو شد بین خاطر اللہ تعالی غانون بیان کرد در زمن بیان قانون امور مصرحه بیان کرد مسئله روزره مسئله حجره بعد این مسئله را بایاد میکنه از عمر مسلح سی بخانی که در روز یک انسانی پنج مرتبه خود را مامور و محکوم به حکم خدا میداند اگر در زندگی یک مرتبه طلاقی رخ داد او حدود ایل آیده میتوانه راحت کنه یک نماز که در شبان نصفند محتبا خدا را محکوم و معمول را بلعالمین میدانه و نماز را با تمام حقومش میخاند و محافظ نمازه اگر در زندگی بمثلی نقاہی و طلاقی و چنین چیزی برخورد کرد او حدود مقررات خدا را میتین راید بی خاطر امر مسلح حافظ و الاس صلوات بیانه نماز برای عمل برای قامعات ممد و امر مسلحه و افتت کنی نمازها را و خطوصا نماز درمیانی را نت جنبور نماز درمیانی اثره اثر این نماز درمیانی چون روز اطاب شروع میشه اطاب شروع میشه شود صبح و زور و بعد مغرب و اشار عموماً در اورک همینطوره. طوره نماغه، صلات نماغه صلات بسته نماغه اثری میشه مغرب و اشراع صبح و این وسط اثره و علت و دلیل اغلی هم دارد بلای این مطلب چه هجوم کارها موقع اثره هست در دنیا در سیستوم زندگی پشت باداره های دنیا در تمام چهار پس موقع اصر باز میشه درسته؟ اکثر باداره اثر اصر باز هم خب حجوم کار کشوردی هم موقع اصره آبا برا هم کن مدیر آبی از که شب باید گردش بده این بزگر باید تمام انتظام شب را در روز بکنه خصوصا اون زمانه ها که دیگه این این امکانات چراغ و فانوس و این چیزها احسن نبوده امروز امکانات چراقی هست و مردم چراغ دستی دست میگیرند دست می و چراغ غوی دست میگیرند می و هنوش حد ساری بیتونند و کنند و عموماً کارهای کشوردی از را انجاب بعد زور از همه مشکولند که شخصی را بیچینند که به باعتاست چوبی زود ارزه کنند مثلاً میگر را که چوبی زود به بی بیدان بار ارزش هنوز شهر نشد اشتما میبینید بجلوی هیچ محصید خدای قد تجامل نیست که در میدان بار تجامل ماشین هر شب وارد میشن که خب باقی نداره سایدان از تجای دنیا از هر تجا واردن الان هم میره پارک میشن که سو پشتری ها بود الان واردن هم گداشتن خب اونجا های دیگری که اطراف شهرات شاورتیه عموما مردم موقع اثر مشغول بفاردش آوردی دمدارها چون ما دانداری کردی همیشه موقع اثر موقع دوشیدن و رسلت کردن بوزها و بوزغالها هست تا دیگر جدا می کنن رسلت ها دمیان دمدارهای از شا دو یکی از کدا دنیا؟ شا اشا، شا حافی و می خو را به دهنش نا الان کی دوستنده رو بعد عدد کردم بعد نان و جو غیره دیگر وہ بھی کنا نہ جو ہے نا دوستاں نہیں رہا پاکستان قرشی یہ انسان ہے چنانچہ خوشحال ہے بلا جمال ہی نہ تریحون وحینۃ تسرو یہ قادر اللہ تعالی بیان کرد کہ از نماز ہشتق نماز اخرت حضور کا رہا ہے کشاء یک خاطر الله کارا گفت، ببینی این نماز را دعای نکنیم، گریم مسجد نماز خوانیم. بازر دام را که می‌بود سیدامیده می‌شمنیش. همادار، سونه نماز بخوان بیا بودوشیش. بازر تجارت را، خب مشتریها ثبت کردم، او برای نماز رخ نداد. این مشتری را جواب داد، اول مشتری را جواب داد، بفرما آقا، بفرما خانم این بفرما بفرما را بازر برو نماز بخوان بادیا بفرما بفرما. بفرما. این خاطر اما تا باقیه میگون هر نماعت صلات مستق اللہ تعالیٰ تکیس اول آم که که اصلابات خب از نماز نماعت درمیانی شب هم ببینی نماعت درمیانی چون شب در اسلام جلو هست از نماز مغرب شب شروع میشه نماز مغلب و اشتار صبح هم که نماز و وسط میشه ظهر از چی این طرف نیست از اونه نتابی که ما حسابداری، حساب شب و روز در اسلام شب مقدم روز معاخد حالا این روز چیه این روزی که الان ما سوچ شدیم چاشکم بینیم شبش کجایه گذشت و شنبه چه شنبه میشب بود تو گذشت. امشب که میاد امشب شنبه. هن شنبه. آیا این اصطلاحاتی که میکنیم این انگلیسی‌ها اونا هم اشتباه داشتند؟ خیالم روز را مکاتم میتونم شنبه بازی کنم. همیشه دارم اینکه شهر شای شب یعنی این شب را اونها شهر شای شب میگن درسته؟ خور لیکن در اسلام نه شب جمعه مغادم و روز جمعه موحقه اون شب شب شنبه میشه و خاطر نماز صبحا واقعا نماز اکرامی همه فاور از فاپولا شدن خار فا آسانی نیسته اللہ تعریف تو تحقید کر که حافظ و سلات و سلات و سلات و سلات و سلات و سلات و سلات و سلات و قیام کنید برای خدا در حالی سکوت باشید خاندین به معنی ساکت باشید، حرف نید در ملوید در سلات اصلاح در نماز هم حرف و اشاره بوید ہم تو نماز حرفی نید دن، ہم اشاره می کردن اللہ تعالی گفت خانتین باشید یعنی ساکت تکلم در نماز شاید نیست بعد همین آیات منسوط نگد شده دیگه الان کسی در نماز حرف در نمازش پاسده بعد نماز نماز شد، دیگه حرفی مرکی نیست و باقی از اینها دو آزمین خانندو چید هم میدندو همین مجسلیدان زمان ما ਇਕ ਤਵਾਸੂ ਨਮੇ ਕੋ خوشن ਖੁਲਿਸਨ ਅਮਦਨ ਫਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਉਕੀ ਬੋਤੇ ਆਪਾ ਸੇ ਤੋਰ ਫਰਾਖ ਜਰਾ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਿਜੀਤ ਪਾਹਰ ਫਰਾਖ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਮਾ ਮੈਂ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿੰਤੇ ਕਿ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋ ਪਹਾਰ ਫਰਾਖ ਕਰ ਮਨiyet ਹੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੇ ਜੇ ਸੀ ਮiyet خب بسیلیت فاصله بیدید این برعکت کردن و حالت قیافت گرفتا او چکیه باقی مستهیدین خب اگر خطری آمد که شما نماز را به طرق نماز, نماز نمی تینی دشمن جنگ چه به تو روی فایستاده در برابر دشمن سلاهم به درد نیت نماز به اشاره نماز بخانی. یا سواری برعض روی دشمنی سادهی در آن همین سواری اشارت کن نماز را تا این اندازه نماز اهمیت دارد که روی به اشاره هم شده نماز را گطا و اگر در سنگری هم به اشاره میتونی نماز نکنی نشسته روخت به دشمن باشه هم نگاه کن هم نیت کن هم نماز تا این بعد باید نماز محافظت بشه که خیلی حالت حساس و اگر سوا خوبی داشتید از دشمن و به دستور معروفم هم نمی نماز بخانی تو نماز بخانی در حالی که روی پا استادهی و در حالی که سواری در اص یا سوار تانکی و سوار ماشین جنگی به اشاره نماز بخانی حضرت امام شعبی برموده پر, پر یعنی مشاہدتان داری راہ میری و نماز پر میخانی لیکن ایمام ابو نیفر رحم الله میگر رجالن کے معنی استاده روپاہ استاده در حالی کی استاده راہ نرے بیشتے بیشارہ نماز بخانی لازمیت که لازمی ہم کدس پر بندے و لازمیت که پوچین راہ اور کپس راہم اتفار در آور ہے مجاہد امسکی زمین را میلے کبشایش تمیزن لہذا با همون پوتیر با همون لباس نماز و اگر خیلی شدت گرفت جائن که قردت اشاره آرامی جنگ جنگ موقع نماز تنباز تو نماز تاخیر میشه چهار تاخیر میشه که در جنگ احضا ستمو بچار موقع نماز فشار دشمن بود و حجوم بود شهاده استن نماز رو خالن و با پیغمبر نماز را با صحابه کردار کرد و بدعایی هم کرد که خدا چند شما رو آتش کنند که شما ما رو مشکول کردید از نماز و خصوصا من صلاح دلگوستا نماز عط و نومه نماز عطمی قصر حجوم بیارن و در این عطم هم عوض خرد شده بلائمه و بتونن نوز بالله درستند و در شب مگر در دفاع نماز شد و بعد بعد صلات و حاصل دشمن تو خدا را یاد کنید نماز بخانی. در همان طریق خدا شمار شما را داده چیزایی شما نکل بید قبل تعالیم بدانید نماغی ای که خدا پیغمبر بر آمودش و تعالیم خریص داده نماغ حالا ارکان محسوس را این پیغمبر سرح ای سلام آموزش داده سلو کما رأیت مونی و سلیم بلن در لغت معنی دعا هست این احکام مخصوصه که امروز بنام نام نماز انجام میگیرن این احکام را پیامبر اسلام صلی الله علیه و وسلم آموزش دادند شما نمیدید که بدانید خالصانی پیامبر خب این حکم استعبادی متوافقان حزودوان داشته این آیه واللذين يتوقون منكم ويذرون أثواذا وسيطا لأثواذهم صان لحور غير إخضاد فإن خضاد الخلاجنا عليكم فيما فعلن فين من مارو والله وزير حكيم إن باعون والذين يتوقون ميجون إنا أيامن سخشوهم والناس تحشمون في والذين إن و این مؤخره در ستابه لیکن در نزول این مقدم بوده و آن مؤخر بوده اول حکمین بوده که شوهر متوفق برای زنش یک سال توضیح کند که بهش شرط بدن نبغه بدن و زن هم باید یک سال در ادنیم یک سال اسلام آمد برزن امر هم کرد را, را به ما ده روز رسانی این یک حکمتیه که خدا میداند و ما باید در این امر تحبودی اقل خود را بفار امر تحبودی نمی دن اقل اونجا فار نمی فقط باید اتبال کنند امر تحبودی نمی کنند پس واد الله تعالی را منصوب کردیم درستان چهار ماه ده روز ایده در این ایام ایده باید مسکن، مسکن لباس پشتاده بشه به از آخره حق میراثش میراثش هم تاییم شده که میراث میبرد از شوق مولان حسین علی رحمه اللهم آیات من سخلط توجی می کنند ایشان می گوید واجب نیست مستحب هست که شوهر توفیه کنه اولیاء خود را که خانم بیچاره من را که من از کردستان و ترکمنستان گرفتم و آوردن حق شده می دیدی چرا این نیست که خانم از کردستان گرفتش ما هیچ حقی نمی دیدیش نه ساختمان های شوهر نه سکولش نه بازار های چجاریش هیچی ای بهش نمی دیدیم نمی دانم از جای دیگر آوردن شده ای این فراده کنیم باید ایشوا ها توصیت کنه به در وصیت نامه های خودش. بینیسه که هم حب به حقوق زنان من را بده. چون نه که کان نمیدم چهار. پس آنها هایی که موذاد میشوند که ما میگوذارن ادوات، باید وصیت کنند، لیوسو وصیت کنند برای زنان خودش. لا و جوبن بل استهبابان بعد از وقت هم یا بودشتن اربع هر وحش را وسیعت کنم برای ازواج خود وسیعتی چامانی و قاید سا غیر اخراجین باشمون زنان غیر خارج شده از خانه از خانه ها اخراج نشد خوب نشسته تو سرابی شنه بچه شنه کنه بچه نگهداری کنه فا انخرجنا اگر بعد از این خانم ها آمدن بیرون گناہی در آنها نیز در آن چکین ها انجام دادا ارخانو اتر را گزرانی دے چارمو در اون را گزرانی دے الان این خانم میخواهد ازدواج کنه خوشتگاری از, از اولیاء متوافق کسی ازدواج نمی کنے بس طور پر نشاره کسی دیگر نمی گیرے دیگر کسی پیام میفرسته پرستے نمی گزارا بیشاره ایسا را دو تا اچھا داره سب اچھا داره زنی بسن نمیس تو سال بیوش شده یا غالی بسن نشی سال بیوش شده این بیشارانا نمی گذار ازدواج کنید حل نا پشن کنید خدا و خدای ازدواجان گفتن نر باید این تو در خانه خلال ولی بودی تو در خانه پلان سیدید بودی تو در خانه پلان آبا بودی در حضا بودی کسی رمیری ازدواج م شرمی شرمی شرمی هنگ اپنی کنید نیست پر شما اے اولیائیم شوحر در آنچکین خانم ها بادر ادده انجام نیدم بان افتان میکنه یا میخان برن جائی دیگر هاگو چه میگی؟ شرمی شرمی شرمی بیان میکنه واقعا ما داری شرمی شرمی شرمی هنگ اپنید فسدارها را چنان محیب می کنم؟ کم آمد؟ اولیا شوهر می گرد جه باید تو قدر شد شوهرت مرده این رسمهای هندو هستند هندوها در قدیم اگر زنی شوهرش می مرد اون زن را زنده زنده با اون شوهر می سوستند الان کمین میگه قدقل شده نمی سوزانردن را که سهر اس مرتضا لو همین دین بکشد لیکن این زنده حق ندارد نکاهد این رسم رسم این دو رسم اسلام نیست وقتی صحیتی کے اکبر کوت کرتے وقتی جعفر تیار کوت کرتے حضرت علی زنہ جعفر تیار به عقد حضرت ابو بکر صحیتی تھا اسماء بنت عمہ فرزند ب اسمی محمد متولد شد محمد ابن علی پس ابتدا وقت شدید دنیا رفتن لذا با بعض من سے بنت, بنت حضرت علی ازدواج محمد ابن ابی بکر هم پروریش در کنار فرزندان خود تمام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی و این محمد ابن ابی بکر سفانی بود که بر علیه عثمان شریده بودن حضرت عایشه بر علیه برادر شمکیان کرد گب باید کنا امیر مظلوم امیر معاویه را شهید کرده بعدی مجارده مطلق زنان که بیش اون طلاق داده شد استحبابا یک دست لباس باید بیدن معرم بیدن دست لباس هم بیدن, بیدن. خواب مرد قلبه ها مهده شده یا تیوه شده یا غیرمت قلبه ها مهده شده معرم بیدن و یک دست لباس بیدن این استحباب یعنی به هر زنی که دلاغ بش رسید اسلام گفته این اشاره خیلی نراحت شده متباحش شده مرد یک دست لباسی باید بخری بده بعد از طلاق همون مسئله را بیان می کنید استحبابیه یه صورت واجبیه که غیر من بها ها طلاق دلت محرشت نشده فقط منجا دست لباس مجوبیه باید گیره لگه هر دنی که طلاق گیره و طلاقش ده بعد طلاق هم باید دست لباسی بده تا اون وقت معشبش و اونا راحتیش یک مقداری مرهم دار همدز اشترش و برای زنانی کلاز دارشوی مطاب المعروف حق حق نر متکین یعنی سبس سقوطن الى المتکین انا ایک از کفر شرک اجتنافی قرانیان مومنه کذالک یبین الله لكم آیاته به همین طریقه بیان می فرمند الله سبحانه و تعالی برای شما آیات احکام شراب تا شما اغل کنید بعد از این بیان امور انتظامی و امر مسلم الله تعالی مساله انفاق و جهاد در مرتبه تحت قرار الله تعالی تعالی میگه هر اد جهاد عقب نشینی ذلت است اگر در جهاد بزرگترین خطری که انسان را تهدید میکند مرد چیه مرگه اللہ تعالی نگه ازلوه مرگه شما جای پراری نیداری شما نیدی کاملا شما تو میبود مرگه ازلوه جنگ و جهات پرارن دردن اللہ تعالی نگه انافار دو بیمی رید مردن شما ازلوه جنگ و جا پرارن انام تر ایلالدین خردو من بیاره این ها خارج شدن از خانهاشون در حالی که این حضارن حضاران نفر بودن از ترس مرخ خارج شدن حضار الموت از ترس مرخ خانهارا بی کردن و فرار کردن فقانا لهم الله موتو الله تعالی به طور تحرینی به آنها گفت ببیری تو پمات و ثمانیت ایامی حکیر ابو سعود میگه اینها 6 شبان روز مردن ثم حیاب اللہ تعالی بعد اینا را زنده‌کرد اینا را دیندکد و آثار مرگ بر اینها بود نبی اینها میگن دعا کرد التماس کرد و خدا اینها را زنده‌کرد این یک ہے که قرآن نه تاریش آنها را بیان کرده نه نبی آنها را فرمانده آنها بیان کرده نه زمان و نه مکان آنها را بیان کرده بین خاطر بعضی مفسر میگه علمشان را ما به خدا تحفیص بکنیم و بعضی ها ایلی در دارن که این یک تمسیلی آن های که جلوی مرگ فرار کردند بعد همه از مرگ نجات نکردند. به مرور زمان موردن یا اینکه دشمن برانهم مسلط شد و همه را اذیت کردند. و بعد نسل آنها را احیا کرد. ثم احیا کرد. نسل آنها را احیا کرد. پس آنها گروی کامل یعنی برای مسلمان جای نیست که زندگی و زندگی از میدان جنگ پر آگر بخاطر جنگ پر که اینجاب ہوگی اینجاب نمی کنے من خود را به پنادایی میگیرم برای این مومن خود را به الهی زندگی را برخاطر حد کنید کنید همیشه موسیقه او، خدا جای دیگر تو صورت اسکتماعی را زکی کنید برای جنگ جنگ جنگ نه من اون فرار نیکنم بی نیا که این استقبال نیتش چی بود؟ برای موقعیت هم که از این سانگار به اون سانگار می رام، از این پناهگاه به اون پناهگاه می رام، و هیچ داره برخوردار تر نیکنم این نیتش کلا متحر متحرداً لکی طالب متحرداً لکی طالب و متحیزه کلا فیق زیر این سورت ما شد که فقط باعت ادار امیدن بعد گناه آئی بسیار کبیله فرار در میدان امید خلاصه الله تعالی میگه مگه انا من کشتم زنده کردم. ان الله لزو فضلین الناس کباد از موت زنده کردی شدن ولکن اکسر الناس لا اشکل قاتلو بی سبیلینا کسال کنی در راه ادار در راه خدا کتاب بود کتان در راه خدا برای چیم اونجا واقعا نوشته بود که من لذت بردم و گفتم برای شما میخوام خاطر و پی کتاب الله کنید در راه خدا این مفسر میفرمن کتان و پی سبیر الله هو القتال لإلاء كلمة الحق قطال برأينا كلمة حق مالا بلي ودقاء القطال بقاتلنا كهي تأمين الدعوة دعوة إسلام در أمان باشار يعني قدرة دعوة برقرار مشكلة لتأمين الدعوة والنشر تي قطال كي ما بتنين در هر قسمت دعوت دین خدا را ابلاغ کن در قسمت بازار در قسمت دانشگاه، در قسمت آئی ارپیش در قسمت که جمعو بشریع دعوت تامین کشی که طال در راہ خدا براینه دعوت دین خدا را ما بکنی ابلاغ کنی نشر دین کنی حتی لا یغلب اهلہو اهل دین مغلوب نشن حق حضور در تجمعات ندارن در رفتار ندارند ولا یصدهم صان عن اقامه شعائره و هیچ مانی مانی شعائر الهی نباشد مانی سقرارانی دین اسلام توحید تابع پیغمبر هیچ مانی از اقامه شعائر دین نباشد الانم میدونن تمام شعائر دین را احیا کنن جمعه عیده خدمت شما دعوت تبلیغ نشر قرآن قرآن به همه بلاد میشه و تلقین اوامر الهی جهاد خاطرین که اوامر الهی تلقین نشه و به خواند بلاد الاسلام وقت به شاعر شورای اسلامی اذا هم طامع فی اغتصابها و یک سماع کننده اراده کند که این بلاد اسلامی را به تصرف و از تمتع به و از های بلاد اسلامی بهره برداری کند jihad banayein hai چه بلاد اسلامیت و تاکیل اشداد محکوز بمانا و خیرات اون بلاد اسلامی برای بلاد اسلام بمانا برای اون شاکلان بمانا امریکا برای این منافع سرشانت احسن پردار افغانستان و ایراغ برای این صلاحایی اغناب بکنه بیفار حال بکنه و ارادت ازلالها این ها بخاطر اینه چه بلاد اسلامی و باشندگان اورا را بخاک دلت نکشن و ادوان بر استقلال آنالتون جهادین بسیم اللہ امروز با این کافرهای حربی هر کسر اپ شکری می جنگ دین ها همه ایلائی کلمت مسلمان را رایی و یا جهاد پاید دعوت کملی ارشاد ابلاغ دین الهی شاعر الهی که من منینه میگن حجاب زنان این شعائر اسلام نیست ولا هم شده برای احیای حجاب این هم به جهاد میشه حساب نمی‌شود حالا این جا میگه فحد امرون لنا بأن نتحلع بالشجاة بابا يقول لباس الشجاة را بتنبكوا ونلبك سرابيل القوة و شلوار القوت را بتنبكوا بيأشى العدو ببعثنا خادش من الباطمة بتنبك ويرهب جانبنا ونكون عزا ونحيا حياة خعيدة في دنيانا وآخرنا ما بعير؟ وبعدين جاء قال مولانا الله سميع علي. مقطع علينا أن نرغب عن قصنا فيما أصابنا قدره. أن التكفير أن انتصار الأمر بالقتال بين هذا ما ماذا نعمل؟ ما تكاد كله. ليس لنا من في من شيء ما يتكارنا داري. ليس لنا من دون الله كشفا إلا نع ذلك من تعلقات الجبنة مجيد. این لتو لا لای بوزدل ها لا تقبل الله ایرو درهارا خدا هم نے وَمَا اِيَ إِلَّا مُرَاوَغَتٌ وَفِرَارٌ مِنَ الْإِتْتَدَى بِلِ اتفاق با اینجا ما چکار کنم از درست که ما چیزی بر ننی آید. ما چکار کنم این ما مسکیم این نی، ما نیه ما بلیه خلق کنم این مفاقر داعت دا کرده میگئیم او خدا نمی فزیر فزیره او اغام نمی فزیره واقعا روح انسان شعب اطول مسلمان ها که در میدان های نبرد امروز در اراغ و در افغانستان با این خیلیسه ها در نبردن و به خودت کسان اگر چانیه هستن همگاه است چرا همه یاد الهی به اونها دارت نماد می کنن روزه می دیدن دکات می دارد اگر داره هستن مال خدره جان خدره آسائش خدره اینها آوردن و دارند دی کنید کنند و یک سری اعوذ بالله این که ها و به شوهر کمار دارد که می ما شو عددشون این کار مرد می ده ما دیره می دیرند و نشخصند و نگاه می کنند که به نگلال ماروغن هم آمده برینج هم آمده ماشه سلکی هم آمده اونهایی که نبرد می کنند زنبال آنها هستند نوکر آقا پوشت فرشون بله خدا افضلت مسلمان هارا در جهاز گذاشته قامتیلو پی سبیر الله این قرآن خدا هست ما خانید نتی سبيل الله شما در راه خدا جهاد کنید و بدانید که خدا سمیع و علیم هست لمن يرغب بالجهاد يصله من يرغب في الجهاد ولمن لا يرغب الله تمام می کنه اونایی که ترغیب به جهاد میده هم خدا حرفشون میشنوه و اونایی که ترغیب نمیده هم خدا حرفشون میشنوه نیا به همه را میداند چه جهاد برایش حدث ما این نیست که یک آغای بره امیر بشه، یک آغای بره رئیس بیشه بماشیم مگر این رئیس این امیری برای ما جی رمی برسته اوبادی اگر برای ما جی رمی برسته ما بیشی که قانون خدا و شریعت غرار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نا دنیا حاکمی ایت داشت باشا ایت سات داشت حکم خدای ما احیاب بشه دفتیر پیغمدر ما احیاب بشه و اگر کسی بیه حیاء دستور پیغمبر را نقص می و او را اگر بگن که تو دستور پیغمبر را و فرمان پیغمبر را اطاعت کن یا این ظلمنی مسته دیگن چیز نیده اما نا به اینی دستور پیغمبر هرچی باشد بیگه دستور پیغمبر ای تعقیم ونیک الان این مستحب به غیر در صدر اسلام خب مبنی دستور نداشت فاکردنی یک هم سنت بہ دعوتیه درچے در بین آیانهای ایرانی و رومیو یہ تو قینجا واسنے قصا سرد ہیں ہاں علی خاطر خودنهای احمد پای کہ عادت نہ دارت کہ من سنت پیغمبر روان نہیں ہونا یہ راس پا صادہ کر دت دیوار پیغمبر می دانشدا نیست که صحابه نمی فاهمیش که یک کار طبیعی یک کار مستحبیه یک اونا غیر اونای حلیر کامیاب شده و این نیست سنت پیغمبر با فقط کاثره تمیش کنید سنت پیغمبر دو ذره بود شمشیر به دست بود نیسته به کمر بود تیری کامن بے سر داد سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ او تحریف برای جهاد پیغمبر تحریف علی بلا نسبت حیثیت خانون دادر که بخابی و نشینی؟ گرجو جانا ما برای شما می پریشتیم شما گرجو ماہیو کنسر ماہیو خوری شما مثلا نسبت عالم اسلام نیادی نایات الهی دارد اگر رایی دیگر برای عزت اسلام غیر از کتال می بود تو خدا همون را به خود راه بود خب در راه کتال انفاظ تروران درامی خدا میگه هر حتی شما خرد می در راه چهار این همه قرض به من ما شما را سوچ میدهم چیه که غرض بدهد خدا را غرض حسن با اکلاس که چند برابر میدهد دوگه اللہ صالح فیضائفو هولهو این قرض را مضاعق می کند بنا ایک خرض دهنده اضعافا چطیر است چند برابر یک به حق و ویضائف علمیشا در این مده بس به حال اون مشاهدینی و خوش به حال اون انسان‌هایی که امروز سربت خدا در این مسیر دارن خلق, خلق می و شوانان را تحریف می و در این میدان و قافرها در نبردن الحمدلله من به خدا امید دارم که این, این شهادت ها این جهاده ها انشاءالله رایگان نمیرد و آمریکا، را اللہ تعالی و انگلیس سالها بینیش حق آمده پرده و بعد همیشه. و این یارانه بوی شبلان و شانون در دنیا و در آخرت انشالله، انشالله دریافت کنند. باقی الله تعالی هر دارایی و ناداری را، او دادن و ندادن به خیار خدا و الله یک برای کسی تابدش میکنند یا اندازش میکنند را چرا که الله کم و کم شمارا میکند نه خود و او مال شما را زیاد و کم الله ویلیه در جون بعد از مر رجوع همه شما هست باز اللہ تعالی بیان جهاد کی سبیل اللہ را باید موردی ذکر کرد صحابان اشک جهاد ناشت کرد هموز در طول جهاد نا آمده بنی اسرائیل در طول تعریف از جهاد وقتی غبرشی می کردن زلت و قارید نیده قران نداریم به شماری در طول تاریخ بشر بیان کرده است که قبل نشینی از جهاد زلته، قوم آل امالک بر بنی اسرائیل دخو تاکر و چاه زنان اینها عصیت کرده است. اینها پیغمبری هم داشتند. طول تاریخ خدا اینها را بدون پیغمبر نکرده است. بدل بدل تو کمر اینا در زمان حضرت شنبیل علیه الصلاۃ والسلام بودن که نیروت و جان دید تا کسی صاحب پیشنهاد کردند شما برای ما یک فرمانده جنگی تایین کنی که ما در قیادت اون فرمانده و اون رهبر بتونیم با دشمنان خودمان نبرد کنیم رغم بر سمیت بینی اسرائیل را می دارید گفتن خدا بر شما که جهاد را فرض نکرده امید دارید که جهاد بر شما فرض بشه و شما می کنی. نکنید اقیانه چیه؟ جهاد را خدا بر ما فرض کنه ما جهاد نمی کنید مقدسی جهاد موجوده ما از بی دیار بیدیاری بی خانه بی خانهی های ما اخیر هست ما اخیر شده لحظه هنوز ماجه غد نمی کنیم پیغمبر پیش خدا انتجا کرد اللہ تعالی دستور دا دار که پرمانده لشکر حضرت پالوت است پالوت از نسل بنیامین مردی دبا زحمت جشت صاحب قوت صاحب ال. علم نظامیش کامی مدت کلش باشه الله از هم بولاد کرد. هوت باطن شم کلی علم جنگیش و حربی آن زمانش هم کلی ور زیده بود. حالا وقتی کرمانده جن تاین شد. این عثرو به اعتراض کرد آخر تا اعلی آورده شد حقیقی معنوی که بله این منتخب الهیه نه ها نظام است به فضی ولا فضی روپتان بازنده در بشر فقط مشینی کاردار لکن های که همکار بودند واقعا برای خدا بودند خدا غلبهش نمود واخر داوان الحمدلله رب العالمین